کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران جلد دوم نویسندگان علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی. ارائه شده از کانال تلگرام هزار افسان داستان های ای صوتی به مدیریت محمد جواد پورستانی راوی مریم کیان پادشاه و سه دخترش بر مبنای طبقه بندی قصه های ایران تعلیف اولریش مارزولوف افسانه پادشاه و سه دخترش از نوع افسانه های سحر و جادویی یا جن و پریه که نظر شواهد موجود تعداد چنین افسانههایی بالاترین درصد را در میان افسانه های ایرانی به خودش اختصاص داده مضمون یا در اون مایه این افسانه صبر و بردباری در سختی ها و ناملایماته و مهربانی و محبت به رقیب و دشمنه. چنان که می بینیم دختر سوم پادشاه در اثر صبر و به پاس مهربانی نسبت به رقیبش به مراد خودش میرسه و پیروز و شادکام میشه. به نام خدا روزی بود و روزگاری بود. پادشاهی بود که سه دختر داشت. از برادرش هم پسری باقی مانده بود که با اونها زندگی میکرد. پادشاه این بچه ها رو به مکتب فرستاد و بزرگ کرد. پسر برادر پادشاه خیلی زیبا و آراسته بود. اونقدر خوشگل بود که هوری و پریها براش میمردن. پادشاه دختر بزرگ خودش رو به این بردرزادش داد. مدت این دختر پسرامو و پسر با هم زندگی کردن اما پسر اصلا با دختر خودش حرف نمی زد چیزی هم نمی خورد. تو خونش هم فقط یک تخت پوست وجود داشت و مثل درویش روی اون زندگی می کرد. دختر پادشاه آقابت حسلش سر رفت به پیش پدرش رفت و گفت من پسر امو نمی خواهم می طلاق بگیرم پدرش هم طلاقش رو گرفت و دختر وسطی رو به برادرزادش داد این دختر هم مدتی با پسر زندگی کرد و اونم از بی حرفی پسر خسته شد و طلاقش را گرفت این بار پادشاه دختر سوم خودش رو که از همه کوچیک‌تر بود به برادرزادش داد پسر با این دختر هم حرفی نزد دختر یک سال صبر کرد و هیچی نگفت هر چه خواهر و میپرسیدن که پسرمو با تو چجور جور رفتار میکنه میگفت خیلی خوبه شماها چیکار چی میکردیم که حرف نمیزد؟ خواهرهای این دختر حسودیشون شد و با گفتن امشب یک قواره پارچه میفرستیم در خونهشون. اگر پسرمو اون رو خرید معلومه که خواهر ما درست میگه. اگر پس فرشتاد که دروغ میگه. سر شب دختر بزرگه یک تاق پارچه زریب کمیزش داد که به خونه ی کوچیکش ببره و سفارش کرد که قیمت این پارچه ست تومنه. اگر میخوای اونو بردار اگر نه صبح میام و میبرم. دختر سوم دید که پارچه نفیس و خوبه خواست که پسرم رو وادار به خیده پارچه کنه. اما نتونست چون پسر اصلا حرف نمیزد. با خودش گفت چه کنم چه نکنم ناچار نشست کناره چراغ و پارچه رو جلوش گذاشت. بعد رو کرد به چراغ و گفت چراغ چراغ با تو بودم شاه چراغ با تو بودم پسرم اونجام با تو بودم. پسرم و جان با تو بودم از خانه خواهرم یک قواره زری آوردن. میخری یا نه پسر گفت چراغ چراغ با تو بودم شاه چراغ با تو بودم دخترم و جان با تو بودم. صد تومان از زیر تخته پوس بردارو بده شب دوم خواهر وسطی یک قواره پارچه دیگه به کندیزش داد که به خونه خواهر کوچیکش ببره قیمت پارچه هم 200 تعیین کرد دختر کوچیک که پارچه رو دید دوباره اونو گذاشت جلوش و گفت چراغ چراغ با تو بودم شاه چراغ با تو بودم حسرمو جان با تو بودم خواهرم برای من پارچه پیراهنی ترس داده یا نه حسره گفت چراغ چراغ با تو بودم شاه چراغ با تو بودم دخترم و جان با تو بودم صبح 200 تومان از زیر تخته پوس بده برای خواهرت ببرم وقتی خواهر بزرگ و خواهر وسطی دیدن که پسراموشون پارچه رو خرید با خودشون گفتن چه کنیم چه نکنیم ناچار کنیزشون رو به خونه خواهرشون و گفتن بگو فردا ظهر خواهرها برای نهار به اینجا میان دختر تا شب صبر کرد وقتی که پسراموش اومد رفت نشست جلوی چراغ و گفت چراغ چراغ با تو بودم شاه چراغ با تو بودم پسرم و با تو بودم فردا و زر برای نهار به خونه ما میان چه کار کنم؟ پسر به چراغ کرد و گفت چراغ چراخ با تو هستم شاه چراغ با تو هستم صبح یک گربه سیاه میاد که دست کلیدی برگردن داره دست کلید رو بر میداری و میری تو زیر زمین تو اونجا دریچه هست اون رو باز میکنی یک باغ بزرگ پیدا میشه توی باغ میری و هفت قلام و هفت کنیس در برابرت پیدا میشن نه چه بخوای اونا حاضر میکنن صبح دختر رو دید که گربه سیاهی اومد دست کلید رو از گردنش باز کرد و به زمین رفت دریچه رو باز کرد و دید که به به چه باغ بزرگی توی باغ رفت و بنا کرد به گردش یک دید که هفت قلام و هفت کنیز از پشت درخت بیرون اومدن و در برابرش صف کشیدن. دوتا از کنیزها جلو اومدن. یکی دست راستش رو گرفت و یکی دست چپش رو. یکی هم جلوش افتاد و چهار کنیز دیگه پشت سرش را افتادن و بهش اشاره کردن که بیا بریم. دخته را افتاد. اون رو به همون بردن. سر و تنش خوب شدسن. لباسای قشنگ به تنش کردن و آوردنش توی نزدیک که زور اومد و پهلوش نشست قلام ها پهن کردن مرغ و پلوف، سنجان، کوکو و شربت و میوه و خلاصه همه جور از خوراکیها ها آوردند و توی صفره چیدن تو این موقع خواهرها هم رسیدن که همراه خودشون سیچل تا از قوم و خیش و دوستاشون هم آورده بودن که اتاق خرابه و تخت پوست خواهرشون رو به اونها نشون بدن به محض ورود کنیس ها دویدند و زیر بغل اونها رو گرفتند و با عزت و احترام سر سفره نشاندند. خواهرها ماتشان زده بود که این چه بساتی خونه پسرمو تا به حال از این خبرها نبوده از بس حواسشان پرد شد که با چاقو انگشت خودشون رو بریدند صداشون در نعیمند. هر جور بود ناهارشون رو خوردند و رفتند. نهار اونقدر زیاد بود که نصف بیشترش دست نخورده موندهش. دختره بشقا پلو با یه مرغ برداشت و زیر سبد گذاشت برای شبشون. اما گربه که دست کلید بگردنش بود اومد سبد رو برگردند و مرغ رو برداشت و برد. دختره به دنبال گربه افتاد و گفت برم ببینم کجا میره. رفت و دید ته باغ یک تخت تلا زدن و یک دختر مثل ماه روی تخ خوابیده جلو رفت و دید که تمام بدن دختر تو سایه است و فقط نیمی از صورتش را آفتاب گرفته دلش سوخت و دستمال خودش را باز کرد و انداخت روی صورت دختر که آفتاب بهش نخوره نگو که این دختر شاه پریان بود و با پسر عموی دختر شاه در این باغ زندگی میکرد و از هسودیش شوهرش رو جادو کرده بود که اصلا نتونه با زنها حرف بزنه امین که دختر کوچیک که پادشا دستمال رو روی صورتش انداخت اون از خواب بیدار شد. چشماشو باز کرد و گفت تو کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ دختر گفت من دختر پادشاه هستم امروز روز مهمونمون بودن شوهرم ما رو تو این باقه آورد که نهار بخوریم خواهرهام پس از نهار رفتند و من هم آمدم توی باغ گردش کنم دیدم که شما خابیده و آفتاب توی صورتتون افتاده دستمالم رو باز کردم و انداختم روی صورتتون که سایه باشه دختر شاه پریان شستش خبردار شد و فهمید که این دختر حووی اونه اما به خاطر مهربانی و محبتی که ازش دیده بود دلش به حال اون سوخت و گفت به عوض اینکه تو آمدی و صورت من را سایه کردی من هم زندگی و شوهرم را به تو میبخشم. این را گفت و به صورت کبوتری در اومد و زد و رفت به آسمون دختر مات زده بود نمیدونست چه کار کنه همینطور داشت به آسمون نگاه میکرد که به امویش از اون سوی باغ اومد دختر حالا حکایت رو براش تعریف کرد. پسر گفت: درسته اون روزها که من نمی توانستم با تو حرف بزنم به این علت بود که دختر شاه پریان منو جادو کرده بود. حال که اون رفته من هم آزاد شدم، این رو گفت و دوتاایی دست صب گه رو گرفتند و به خانهشون رفتم و تا آخر عمر به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند.